بغداد 26 همه رجب 640 نه ماه است که به ما ملحق شده اوایل گمان می کردم شمس هر آن ممکن است به سرش بزند کاسکوزش را جمع کند و برود مثل روز روشن است که قواعد خشک خانقاه اش را سر میبرد می توانم ببینم که در ساعتی مشخص خوابیدن و بیدار شدن در ساعت‌های مقرر غذا خوردن و تابع مقررات دیگران بودن تا حد مرگ آزارش می‌دهد عادت دارد مانند پرنده‌ای تنها آزاد و مستقل باشد زندگی در خانقاه کاسه سبرش را لبریز کند. راستش منتظر روزی بودم که فرار را برقرار ترجیح بدهد اما هیچ جا نرفت آرزوی یافتن آینه روحش همراز و همدلش چنان عمیق است که همه اینها را تحمل می کند و صبورانه منتظر مانده ایمان دارد که روزی به او خواهم گفت به کجا و نزد چه کسی باید برود؟ در پرت این ایمانش با ما مانده؟ در عرض این نهما او را از نزدیک زیر نظر داشتم زمان برای او انگار طور دیگری جریان دارد سریعتر و غنیتر مسئله ای را که دیگر در ویشها برای درکش به هفته ها و گاه ماه ها زمان نیاز دارند شمس تبریزی در چند ساعت درک می کنند. با کنجکاوی فراوان به هر چیز نو و غیرعادی علاقه نشان می دهد. هر روز صبح بیرون خانقاه می گردد و مدت طولانی غرق تماشای طبیعت می شود. بیشتر وقتها او را در باغچه در حال تماشای تار عنکبوت یا قطره های شبنم نشسته برگلی گلی کفته می بینم. حشرات، گیاهان، بلورها، سمقها، خارها و به طور کلی طبیعت در نظر شمس از کتابها و رساله‌ها ها جذابتر و الهام بخشتر است. اما درست همان موقع که فکر می کنم به کتاب خواندن علاقه زیادی ندارد، یک دفعه می بینم دست نوشته ای صد ساله به دست گرفته و با دقت و وسواس معنای کلمات و حروف را تک به تک در می آورد. شب و روز بیخابی می کشد تا بیشتر مطالعه کند. بعد باز می بینم هفته ها گذشته، ولای هیچ کتابی را باز نکرده علت را از خودش که پرسیدم چنین گفت انسان باید عقلش را کودکی گرسنه و محتاج بداند و با قاشق قاشق علم سیرش کند اما همانطور که بعضی قضاها برای کودک سنگین است بعضی آگاهی هم برای عقل سنگین است این را هم نباید فراموش کرد نگو یکی از قواعد اش در این موضوع بوده قاعدهٔ پنجم کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد عقل محتاط است ترسان و لرزان گام برمیدارد با خودش میگوید مراقب باش آسیبی نبینی اما مگر عشق این طور است تنها چیزی که عشق میگوید این است خودت را رها کن بگذار برود عقل به آسانی خراب نمی شود. عشق اما خودش را ویران میکند گنجها و خزانه ها هم در میان ویرانه ها یافت می شود. پس هرچه هست در دل خراب است شمس را هرچه بیشتر میشناختم بیشتر شیفته فراست ادب و هوش سرشارش میشدم در این حال میدانستم که حالتهای استثنایی شمس های منفی هم دارد مثلا همیشه حرفش را میزد به درویشهایم آموخته بودم که خطاهای دیگران را به دیده اغماس بنگرم بخشنده باشند و سر بدهند و سر ندهند. اما شمس هیچ خطایی را نمی بخشید. اگر اشتباهی از کسی سر همان موقع می گفت. سریح و بدون پرد پوشی هم می گفت. حتی اگر میدانست باعث ناراحتی دیگران می شود، باز هم حرفهایش را ملایم نمی گفت. گاهی شک می کردم که نکند دیگران را عمدن تحریک می تا ببیند وقتی عصبانی می شوند چطور فریاد می زند. خیلی سخت بود او را پی کارهای عادی بفرستی. تحمل مسائل روزمره را نداشت. همین که حس می کر به چیزی عادت می کند علاقهش را به آن از دست می داد. اگر از صحبتی حوصله سر می رفت، یا کسی حرف غیرعاقلانه ای می زد فورا پا می شد و می رفت. با همه یک جور رفتار می کرد و به کسی زیادی علاقه نشان نمیداد. داد مثل راحتی، آسایش و مقام و مرتبه که به نظر اکثر آدمها خیلی مهم است در نظر او ذره اهمیت نداشت. به کلمهها اطمینان نمیکرد این هم یکی از قواعدش بود قاعده ششم اکثر درگیریها پیش داوری ها و دشمنی های این دنیا از زبان من شهر میگیرد تو خودت باش و به کلمه ها زیاد بها نده. راستش در دیار عشق زبان حکم نمی راند آشق بی زبان است با گذشت زمان وضع سلامتیش هم باعث نگرانیم میشد. البته در نهایت تقدیرمان دست خداست فقط اوست که می داند کاسه عمر کی پر می شود. با این همه تا آنجا که از دستم برمی آمد سعی کردم سرعت شمس را کم کنم و او را به زندگی آرامتر و با نظمتر عادت بدهم مدتی فکر می کردم موفق هم شدم، اما بعد زمستان فرا رسید و همراه با سرمای کشنده پیچی نیز از راه دور آمد و نامه‌ای آورد و آن نامه همه چیز را زیر و زبر کرد.